اللهم صل على فاطمة وأبيها وابالها وبنيها وسائر المستضعفين فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وأوله محمد وعجّل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم مباحثه تبل معصومی صفحه 150 اواخر صفحه از امام صادق علیه صلات و السلام میگه در خوراکی خوردن شبیه ترین مردم به رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم، امیر المؤمنین علیه علی السلام زیرا همچون انبیا نان سالم بهداشتی سبوسدار که غالبا نون جو سبوسدار بود و همچنین سرکه طبیعی مخصوصا سرکه طبیعی انگور عسکری و همچنین روغن زیتون خالص خوراکی یعنی غیر سمی غیر فرابری شده چون زیتون دو جوره سمی و غیر سمیه چه زیتون خوراکی طبیعی غیر فرآوری شده این ستا رو نوشه جان میکرد امیر المومنی علی علیه السلام ولی مردم رو به خاطر اینکه که کمخونیشون خوب بشه زرف عمومیشون خوب بشه فقر ویتامین به دوازده و فقر ویتامین آشون خوب بشه بنیه بدن و استحکامشون خوب بشه و اونها نانو گوشت میداد تصاف فهمودین که جون بگیرم و یطع مناسه امیر المومنین علی علیه السلام مردم رو خوراکی میداد الخبز واللحم نانو گوشت که تو گوشتا بهترین گوش گوشته، گوسفنده و در گوسفند بهترینه، شما نکوشنده، و گوسفنده، تو شما مؤمنان. روایت بعدی امام صادق علیه السلام فرمودن دخل رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم الی ام سلمة فقامت الیه کسرا یه تیکه نان بهداشتیه سالمه سبستار پیغمبر اکرم عطا کرد به ام سلمه ام سلمه به خدمت حضرت آورد ام سلمه به خدمت حضرت آورد فقال پیغمبر اکرم فرمودن هل اندکه ادامه آیا خرشتی تو خونه یافت میشه ام سلامه گفت لا چیزی دیگه نده یا رسول الله ما عندی الا خلون بعد سرکه طبیعی مختصری تو خونه فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم نعمل ادام الخلون و ما اقفر بیتون فیه خلون هیچ خانوادی تو بحث خردخوراک و تغذیه و ریزم و قضیه هیچ خانواری در فقر تغذیه و سوء تغذیه نیست. خانواده‌ای که در اون خانواده سرکه طبیعی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا سبب استحکام ها میشه و پیشگیری منقش در درمان پوکی استخوان یا بیماری استئوپروزه. من تو بحث هضم غذا و جذب غذا کمک میکنه در معده و رودها مخصوصاً روده کوچکی خب اینجا نمیگذاره که غذا ضایع بشه و مواد مغذیش از بدن دفع بشه که شخص دچار کمبود املاح و کمبود بیتامین های بدن بشه چیزایی دیگه هم مومن باز هست کاری میبینیم انگل های موزی یا کرمک یا کرم هست مثل کرماسکاریست تو معده یا روده خب خب هم که شیرازه غذا رو میخورم توفاله قضا مینوز شخص لذا شخص نحیف و زرد و زار میشه رنگ پریده میشه رنگ پریده ایش به خاطر چیه مومن کمبود املاح و کمبود ویتامین سرکه طبیعی مثل مغز تخمه هندوانه خام زده انگله زده کرم، زده کرمک، فقر بهداشتی هم پیدا نمیکنه، فقر غذایی هم از درون پیدا نمیکنه، به خاطر عامل موزی مرموز که در ظاهر ناپیداست ولی از درون شیره غذا رو همه مصرف میکنه یه حد اکثرشون حتی تو روایات توشییه اداری میگه اگر کسی استحکام اقلش میخواد، پایداری اقلش میخواد و استفاده بهینه و مسمر سمر از عقل فعال کاربردی میخواد تو جیره غذایی خودش و سبد خانوار سرکه طبیعی بگذره. لازه میش همجوری بخوره یا زیاد بخوره که سرسوزه سوه معده بگیره. یا تشدید بشه مثلا ریفلاکسش نه اینا میتونه با ضمیمه بخوره مثلا وسط روز یا عصرانه به همراه آب بخوره یا سالاد کاهو و مانند او که درست کرد سس نزنه خب یکم سرکه روش بریز یا اینکه اگر کبده چربه ها یا انزیمای کبدش بالا رفته هم، کبدش هم فعال کنه صفرا ملتهبش هم کم کنه مرار اینجا میتونه استفاده کنه از سکنجبین سکنجبی اگر رقیق بشه با آب بهترین داروی کاهش دهندهی التهابات صفراویه خب سکنجبین یک واحدش چیه سرکس. حالا تو بحث عقل و استحکام عقل به نوع فعال کاربردی در شخص باقی بمونه دچار نسیان دوچار دمانس یا زوال عقل دوچار آلزایمر یا زوال عقل پیشنونده نشه عنصادق علیه صلاة و سلام. انا لنبدعو بالخله عندنا کما تبدعون بالملح عندکن فا انا الخله یا شد میگه شما مردم ابتدای قضاتون رو شروع قضاتون رو با نمکه نمک طعام سالم بهداشتی یعنی گندزدایی شده چه پودر به سنگ نمک باشه چه نمک دریا باشه هم باید سالم باشه هم باید بهداشتی یعنی گندزدایی شده باشه که از نمک دریا تقریبا 90 نوع املاح دارد کسایی که فقر املاح دارن یا شکم ریش دائمی دارند یا مثلا پوکی استخوان دارن یا نرمی استخوان بیماری راشیتیسم دارن خب. لما که دریان براشون خیلی خوبه که اول آخر قضا بخوا. اما به شرطی که بهداشتی هم باشه سالمه بهداشتی اکثر این نرک های دریان که بعضی جا هست مومنان گنزدائی نشده نصال فهمونید حالا خب. مباعث خودم معصوم می فرماید قالب مردم اول قضاشون رو با نمک شروع میکنند ولی ما معصومین با سرکه شروع میکنیم ولی سرکه طبیعی بدون افسودنیای های مجاز بدون افسودنیای های شیمیایی، سرکه طبیعی حالا مسمل خل مثلا نکه قاشق چای خواهی. اول قضا میخواهی آخر قضا میخواه کسانی که مثلا اگر شخصیم تو چهار بیماری های متابولیکیه مثلا خون داره چربی خون داره شما از فشار خون نرستانی داره تصاف فهمونه برای چنین شخصی اول و آخر قضا مسم من خل خل بسیار خوب سرکه طبیع رو هم رفته در نهار و شامش کلن اگر بشه چهار گرم تصاف فهمونه ها تو بحث نمک طعامم هم همینجوره اگر مثلا یک شخصی بیماری خاص متابولیکی نداره اما بیماری ای داره مثلا ایشون تو مسائل سلام علیک خصوصیش با حضرت خانومش مشکل داره مثلا نعوظش کامل نیست قوه با ضعیفه اونو تا یازده نقص دیگر اگر این نمک طعام بهداشتی قاطی کنه با سعدتر یعنی با آویشن شیرازی به نسبت مساوی حالا اول و آخر قضاش نمک مخلوط با پودر آویشن شیرازی بخوره یکی از بیماریاش که مثلا سپر بود درمانش یکی دیگه از بیماریاش مثلا فشارخونش همیشه زیر ده بود فشارخونش میاد به دواسته نرمال میشه که چند نظر فوق تخصصی مومن در بیماری خون فشارخون نرمال قالب افراد باید یازده روی هفت نیم باشه یازده فشار انقبازی قلب هفت نیم فشار انبساطی قرم بلی مردم میگیم دوازه هشتم تصاوت فرم بودیم؟ حالا کسی که فشار خونش همیشه پایینه زیر دهه، زیر نهه که این اتفاق بیشتر تو خانوما رخ میده و یا مردهایی که سبحان سحری عمدن نمیخورن یا اکثر اوقات شام نمیخورن اینا هم دوچار افت شدید قرم میشن سننای ما مثلا یا زیر نبر. یا در جوون و نوجوون قندش میاد زیر هفتاد. فشارم اومده پایین های بیماری هیپرتمی میشه ضعف عمومی بدن لذا تو روایات شیعه داریم هر کسی که شب پنجشنبه شب جمعه شب شنبه این سه شب پشت سر هم شام نخوره امده یا افتار نخوره امده حالا تو شامش روایت در میگه تا چهر روز قوای بدنش تأمین نمیشه. یعنی انقدر ضعف عمومی شدید میاره. پس کسایی که میخوان درمان چاقی مفردشون کنن خود درمانی غلطه یا بعضی دستورالعمال هایی که از قرب و شرق است و ترجمه میکنن که مثلا شامت نخور یا ناشتاییت نخور اینا بسیار غلطه چون خود سحری نخوردن، خود صبحانه زود نخوردن، 12 بیماری میاره. اصلا خودش عاملیه برای چاق شدن مفرد. چون طرف در های بعدی غذایی پرخوری می کنه. بیماری میاره، ضعف حافظه میاره، یبوست میاره، بی‌حوصلگی میاره. کارهای محوله رو به اتمام نمی‌رسونه. اینا رو تو تبو رسول مصطفی گفتن مؤمنان. خب اگرم شام نخوره کم یه روایت گفتم موامنا از این کتاب مال محاسن برقی کتاب المحاسن مال برقی اونجا روایت مالی که گفتم پس اگر کسی چاقی مفرد داره باید نهار رو حس کنه به جای نهار کاهو مثلا پرتغال از این چیزا میبجات و سبزیجات مصرف کن بیدیم نهار رو باید حس کنه اما صبحانه صبح زود یا سحری باید بخوره به خاطر اینکه اون دوازده بیماری نگیره شام رو باید بخوره به نوع مفید ولی اول شب شام دیر وقت نخور ترشا میکنی پوده میکنی تخمه میکنی سردل میکنی یکی از عوامل تشدید ریفلاکسه اگر کسی داره و اگر ندارم همجور. چون بعد از شام لم میده فکسا فهمیدین این گردش قزو تو معده هست اسیدام که تعیشو میشه که این قزو رو حس کنه سر وگردنش هم که هم تراز بدنشه و عوامل ایجاد ریفلاکس یا برگشت اسید معده به مری مهیا شده پس شام باید زود بخوره این سرکل چیکار میکنیم؟ یا قاتیه این سالاد به جای سس به جای آبلی منده اگر کسی ضعف اعصاب داره آبقوره طبیعی قاطیش کنه اگر کسی نداره سرکه طبیعی انگور عسکری قاطی این سالادش کنه یعنی سالادش بدون سس باشه یا اینکه حش لیوانی که تو 24 ساعت باید آب آشامیدنی میدانی سالم بخوره چا لیوان آب چا لیوان آب جوش حالا تو دو تا از این های آبش مثلا وسط روز عصرونه یه قاشق سرکه انگور اسکری پلوخوری قاطی یه لیوان آب آشامیدنی سالن وسط روز یه قاشق پلوخوری سرکه سیب سرکه طبیعی سیب قاطی یه لیوان آبش اسرونه اینم به خاطر یه سری مسائل که بعدا بیشتر توضیح میدم که بخونم اینم خواستم اهمیت کار معصومه بگم هم واقع نگره هم واقع هم دارای آینده نگری یعنی به عنوان یک پیشگیری طبیعی هم کمک میکنه به هزم غذا هم کمک میکنه به ترشعات لازمه از بزاق قدد بزاقی زیر زبان هم کمک میکنه و درمان میکنه به تورم لثه، التهاب لثه، خهلوبچه لثه، تورم لوزهای جانبی، پیشگیری و همچنین درمان تورم لوزه سوم که در واقع تورم انتهایی سلول سقف دهان هم پیشگیری میکنه هم درمان میکنه مال خلط اضافی، نوزولاتی که نزله اینا همه رو پیشیم که صلفه های خلطیه و یا خلت پشت حق نداشته باشه تا بخواد حرف بزنیم یا صلفه کنه. ببین همه اینا رعایت بکنه چه در زمین قضا باشه صلفه های خلطی چه در زمین گفتن باشه تصاف فهم چون صلفه در هنگام غذا خوردن و همچنین قهقهه و خنده با صدای بلند در هنگام قض... قضا خوردنها خطر رو دوچندان م بایی ممکنه قضا وارده چی بشه؟ نایی بشه و اگر حتی اندازه یک دونه برنج باشه انقدر صرفه میکنه یا باید در بیاده خفه میشه پس قهقه ها با خندیدن اینگام قضا خوردن یا با توجه غذا نخوره یا با همه حرف بزنن حواظ فرد غذا بخوره حالا اگر خلط اضافی پشت حلقه هم داشت نزله گاهی از صرفه خلطی ها تو میپر خورناس و خُرپوفش هم زیاد حالا هم خودش خوابش راحت باشه هم خانو و خانواده خوابش راحت باشه از این خورناس و خُرپوفه این شخص از خواب نپره یا نران جاشونو عوض کنم برم تو سالن یا ی اتاق دیگه سرکه طبیعی تو جیره غذایی باشه بسیار خوب خاصن اهمیت کار معصومه بگم ها. ها. روایت بعدی ذکره خلل در نزد امام صادق علیه سلام ذکر خیب سرکه انگور اسکری شد که بهترین از انگور هاست تو مبحث ما فقال یک طول دواب بلبد سرکه انگور اسکری یا سرکه های طبیعی کشنده جنبندگانه موزی مرموز ناپیدایه در دستگاه گوارشه چه معده چه روده و یشد فضای دهان و حلق رو محکم و استوار میکنه از حیث ورن و از حیث خون روش و از حیث اینکه یک باکتری کشه طبیعی تو بحثای فوق تخصصی سلولی مولوکولی میکروبیولوژی مس جوئد، مس آدلبرگ، مس دکتر اطهری، دکتر همتی، دکتر محبی، خب حالا اینجا تو فضای دهان و حلق تا کنون حدود 500 باکتری، حدود 500 باکتری شناسایی شد. 7 الی 8 باکتری اینها مضر هم به عاج دندان، مینای دندان، لثه لوزه ها ما و مانند اون تصالب فهم بودی؟ ایجاد انواع افونت ها آنژین گلو. بعد حالا اگر افونت ها درمان نکنه یا بیرون نریزه گرت بده این بعضی افونت ها از جدار مهده بعضی افونت از جدار روده اینا جذب دستگاه گردش خون میشه و شخص مبتلا به روماتیسم قلبی میشه حتما باید تو آنژین گلو عفونت های گلو حتما باید یه واحد پنسلین بزنی یایه حدا حالا میزان پیشرفت عفونت چقدره؟ این متخصص گوش حلق و بینی یا فوق تخصص فک و صورت ترومماتوللووژی او تعیین میکنه پنسسلین ۸شت هزار بزنه یا 1.200 میلیون چند نوبت میزنیم. دیگه باید او متخصص بیان کنه. حالا اگر اصلا نخوای عفونت پایین بره و های نسوج لسه و لوزه های جانبی. لوزه سوم تورم پشت زبانک. قسمت لحات. دو گوش حلق. لحات با حید دو چشم. قسمت دو گوش حلق. همه اینا افونت ها کشیده بشه به بیرون بریزی. بهترین دارو چیه؟ قرقره محلول آب سرکه. حالا میتونی از سرکه طبیعی استفاده کنی؟ چون نمیخواد قورت بدی؟ بیتونی از سرکه سفید استفاده کنی. یک سوم استکان سرکه دو سرومش آب. تو دهان میگردونی قرقره میکنی میزی بیام. تا وقتی که این استکانه تموم بشه. اگر شب قبل خواب این کار کنی آب بهترین زمانه. مشکلات تنفسی مثل کیپ بینی. مثل نزله. مثل خلط اضافی پشت حرف. مثل خوروپوف و خورناسی که ناشی از خلط اضافیه اه. که طرف دهنواز میخواه و سرسود زیاد میکن بله یه بار دیگه خوروپوف و خورناسش ناشی از تورم لغزه و لغزه سوم یا نزله و خلط اضافی یا کیپ بینی نیست بلکه به خاطر پولیپ بینی زائده گوشتی یا زائده استخوانی داخل مجرای بینیه پولیپ بینی یا اینکه تیغه بینیش انحراف داره ژنتیکا و وراسته یا دلعرض انحراف تیغه بینی داره مثلا با صورت زمین خورده یا تصادف کرده یا تو ورزش تو بوکس و کاراته ها مثلا خورده تو صورتش مثلا یا با صورت افتاده حالا اینجا دیگه جراحی داره پزشکی جدید در, در درست کردن انحراف تیغه بینی و در پولیپ بینی چه زائده گوشتی چه زائده استخوانی پزشکی جدید اینها جراحی دارن تصافه شد با تکنیک نوین جراحی به سبک جراحی کارنت. اما تو پزشکی طب مکمل طب گیاهی و همچنین تو استفاده کردن از العلاج و بالعشاب درمان با داروهای گیاهی و محلول آب سرکه قرقره میکنی تو درد میگردونی این تموم شد بخور سرکه بخور سرکه یعنی این ظرف که رو بخاریه بعد یک کم سرکه میریزی توی این آبایی که رو بخاریه بخور سرکه با بینی نفس میکشون بعد دستگاه بخور داره بخور اوکالیپتوس که کیپ بینی, کیپ بینی باز بشه مخصوصا قسمت سینوس های فوقانی و همچنین ششهاش ریاهاش رعتان ششهاش متصع بشه حجیم تر بشه و جذب اکسیژنش بیشتر بشه که احساس کم بود اکسیژن نکنه احساس خفگی و کمی تنفس نکنه این هم شد دوتا حاجه قا. این پولیپ بینی اگر پیش رفته بود گایی از یک سوراخ بینی اصلا نمیتونه نفس بکشه. گایی از هر دو سوراخ بینی اصلا نمیتونه نفس میکشه. همش با دهن نفس میکشه. وقتی هم که خوابه همیشه بازه. با دهن نفس میکشه. چنین افرادی اگر درمان نکنن و کم کم صورتشون گرد میشه. چشماشون هم حالت گردی به خودش میگیره مؤمنه. خب جنبه جنتیکی و راستی نداره. جنبه عارضی د این باید تورم لوزهای های جانبی و تورم لوزه سمومش رو درست کنه کیپ بینیش و پولیپ بینیش که زائده گوشتی یا زائده استخوانی بود برطرف کنه خب مال لعوزه های جانبی و لعوزه سمومه چی گفتم محلول آف سرکه هر شب همون برامان میخوابا افونتار هم میکشه بیرون این جارو برقی که آشغال جمع کنه افونتار هم میکشه بیرون بذری بیرون دیگه نیست مثلا از خاستپم بخوریم مثلا آموکسیسیلین آموکسیکلام سیفالکسین مثلا لازم نیست چیزا بخوریم اوفوناتر می کشه بیرون لوزه حالت عادی پیدا میکنه از حیث حجم و از حیث وزن بدون اینکه تورم داشته باشه بدون اینکه اوفنر داشته باشه پس این کار رو تکرار کنه هر 24 ساعت یک بار شب قبل خواب بهترین زمانه مال پولیپ بینی این برگهای گزنه بازه زنبوری. بودید. برگهای گزنه. اگر تازه بود لحش میکنید آثارش میگیرید. با قطر چکونم؟ یکی دو قطره میچکونی روی پولیپ بینی. رو خود پولیپ بچکونم. چون خراش میده پوستو. و پوست داخل بینی خیلی زریفه داخلش. پس با قطره چکون رو خود پولیپ بینی یکی دو قطره میچکونی. تو بیست چاسه یک بار کم کم پولیپ بینی از بین میره. من مریضایی بودن مؤمن در خونه مراجعه کردن و از کجا آدرس کردن نمیدونم بعد اینا بعضیشون دوبار سه بار عمل پولیپ بینی کردن پولیپ بینی از بیماریایه برگشت پذیره باز ناراحت بود شبا نمتونه نفس از بینی بکشه همین کلمه ای که خدمتیمون گفتم آساره گزنه یا زماد گزنه یا قطری گزنه یا اسانس گزنه هر کدام در دسترس بود رو خود پولیپ بینی بگذار این طرف این طرف نگذار کم کم پولیپ بینی میخوره و از بین میره تنفس شخص در هنگام بیداری و خواب راحت میشه این دیگه از ما به جمله معترضه در ضمن محلول آب سرکه خدمت شما توضیح دادم اینم و یشد دلفم بحث بهداشت دهان و دندان بحث سلامتی دهان و دندان و همچنین سلامتی لثه خیلی مهمه اکثر بیماری های دهان در سن زیر سی و پنج سالگی مربوط به آج دندان و مینای دندان مربوط به دندان گایم آفت دهان میشه اما بعد از سن 35 سالگی اکثر بیماریهای دندان و دهان و مربوط به پوسیدگی ریشه دندان و مربوط به لثه سنای بالای 35 سالگی اکثر بیماری تو فضای دهانشون مربوط به ریشه دندانه فوسیدس یا عفونت داره یا کیست زیری داره که رود کانال که بعد بعد جرایی کنن اثر کشی کنن مؤمن بعد قشن ریشه رو معالجه کنن معالجه ریشه گاهی هم مربوط به چیه؟ لثه خرابه مثلا اگر کسی دخانیات زیاد مصرف کنه یا مواد افیونی اینجا فاتحه یه لسته خونده لسته ها رنگش قهوه‌ای میشه یا سیاه میشه و دندونا, دندونا سر جای هر می اه... کج با کج میشه به حساب جا به میشه لقی داره عین نردمون متحرک پایش سست میشه چون لسته به پوسیدگیه یا این که اصلا ریشه نداره تاج داره اما ریشه دندان نداره تاج دندون هست هم. ولی ریشه دندون یختون نداره یختون اصطلاع ترقه یعنی نداره این هم مؤمنان تا اینجا امام رضا علیه السلام ستا روایت از امام رعوف امام رضا علیه السلام بخونیم امام رضا علیه السلام فرمودن اِنَّ الْخَلَّ یشد و و یزید و فلعق. ذهن آدمی رو استحکام می بخشه استحکام ذهن یعنی عملیات ذهنیات قوه مفکره قوه واهمه قوه خیالیه حافظه اصلی حافظه موقع همه اینا استحکام می بخشه خیال سر جاش خوبه استارت ترهه اشکال نداره نعمت. اما نمیگذاره تشدید خیالات بگیری بیفتی توی کسی رو شک و بیفتی توی وصفاسی گرفتی مومن ها چی میگن؟ اصل خیال نعمت ها اما تشدید خیالات نقمته بیماری. حالا چه شک و دودلی مستمر باشه مومن تو هر چیزی شک میکنه جزا شکاکیون میشه نظیر فخر رازی که اهل تسنن و همه میدونم اما عمال مشککی میکنه آجام میکنه ما صوفستاییم میکنه به در ما یکی دیگه چیه مومن کسی که کسی رو شکش تو اعمال شخصی یا اجتماعی تو اعمال معاملات یا عبادات خواه هم از زمان عقب میمونه همیشه عقب مونده وافسگه هست و چلین شک ها و شکوکیم ایمان بلفل و بابرهای صحیح انسانی مثل بیماری جزام یا خورم که یک بیماری افونی از 809 بیماری افونی ایمان آدم رو میخوره به قول مشهدی ها ایمان آدم بدگل میشه زش میشه به ایمان خود مخوایی نگاه کنی این چه ایمان در به همه چی داره یه ذره سرسوزارم یه گوشش ایمان ایمانش بلفل باشه استوار باشه ها هیچ جایی شک و شبه نباشه. خیلی جالب ماام باورهای مثبت یقینی. که نه در شرایط عادی نه در شرایط بحرانی اصلا شککه در اصول ارزشی نمیکنه. قربون ابوالفضل عب عباس عب اول هرگز شک نکن این عبدالله واقعه این عبدالصالح این المطع لله و لرسولی و لامیر المؤمنین و للحسن و الحسین که زیارت میخونی سیعت عبود فضل عباس پس مؤمن ها ببین. حالا تو خوراکیا ها یکی از چیزهایی که ذهنت و عملیات ذهنی تو مندگار و استوار نگه همیداره نمیگذاره فکر خوب متمرکزت از دست بره مخدوش بشه دوچاره بیماری های زمینه ای زهنی مثل اختلالت روانی آشفتگی های زهنی بشه یکی از خوراکی های مفید چیه؟ همین سرکه طبیعیه که تو جیره قضایه سبد خانوار باشه این الخلد یشد و زهن و یزید و فلعقل عقل تو فعال کاربردی نگه میداره نمیگذاره تو نهفتگی و پتانسیل باشه عقل داره اما عقلش تعطیل کرده استفاده نمیکن اینجا سرکه طبیعی کمک میکنه به عملیات اقلائیه و, و زمینه میشه و بستر میشه برای اینکه اگر انتخاب احسن کنی این عقلتو متصل به وحی کن همچون انبیا و مرسلین عاقل. همچون عوصیه اولیا، همچون چاردن معصومینی که رئیس العقلان از رسول الله حضرت زهره و امیر علیه علی السلام و یازده معصوم بعد از او از جمله امام زمان مهدی منتظر مولا صاحب زمان الله تعالی فرج و شریف اینا عقل فعال کاربردی دارن اما خودمهه بله ولی خودبین نیستن. به همین مقدار اکتفا نمی کنن. عقلشون متصل به وحیه. لذان مسرونه از خطا و اشتباهن. پس بستر اتصال عقل متصل به وحیه فرمه کن. اول همین عقلی که داری به صورت فعال کاربردی قرارش بده تضعیفش نکن تحتیلشم نکن تا زاییه نشه. بعد زمینه اتصالش به وحی و فران کن تو که نبی نیستی تو که مرسل نیستی تو که علالعز نیستی پس گوشی چه داشته حرف انبیاء و مرسلین مخصوصا نبوت خواسته رسول الله گوش کن ترتیب اثر بده یعنی احیاگر سنت رسول الله باشه همون کاری که امام حسین اقدام کرد تو جریان حق حسینی. رسول مومنان بعد نسبت به بلایت حقی حضرت زهران دوازه ایمان معصوم خب اینجا هم کلام اینا رو بشنو ترتیب اثر بده عمل کن حالا عقلت متصل به وحیه ولی به واسطه معصومین علیه همه صلی اللہ وسلم جورس الامجو ذریب و خطات هم بسیار کم میشه گایی ممکنه سهون یا قفلتن از سر بزنه بازم خودت مقصر اگر مستمر باشی تو بیدار باشه بلایی ها صحب و قفلت هم اما اگه حواست پرشه خودم می گم خودم میفهمم خودم انجام می این من من کنی این من من شیطانه هم مقصر خودتی که شیطان زده شدی و فاصله از بلایت حق گرفتی. اگر نه راه حق معلومه که اظهر من شمس صراط مستقیم معلومه چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر. به شرطی اینکه که شخص عقلشو تو نهفتگی و پتانسیل نگذاره کار بردیه بلفیل کن خود ولی خودبین نباشه عقلشو متصل به بحی کنه پس به فرمایشات گوهربار معصومی وقتی که اسنادش سعی و موسقی چی کنه عمو جان؟ عمل کنه این هم مومنه. حالا معدات تو خوراکیا ها یکی از معدات چیه؟ مصرف سرکه طبیعی یکی دیگه از معداد چیه؟ اون داروی امام رضا علیه السلام اهلیجاد در اصل پرورندشه که قبلا توضیح دادم باز چیزای دیگه هم هست مثلا در حال جنابت خوردن و آشامیدن نباشه ضرورای متعدد داره یکیشم نارسایی های ذهنی میاره پس قبل از قسل جنابت چیزی نخوره چیزی نیاشامه بذاره بعد از قسل جنابت باید برای اینکه که قوای بدنش زود تعمیل شه چه پایین تنه چه ازولاتی و مانند او چه ذهنی اینجا امیر علی علیه السلام فرموده اولین غذا و نوشیدنیتون بعد از قصل جنابت شربتن من العسل کلمات قصار امیر تو قرار حکم آمدی بفرمو تقویت قوای فکری علایه بر قواه دیگه مثل قواه عزلانی و قواه پایین تنه تو بحث خانه و خانواده بین زن و شوهر یا پدر و مادر قوایت بعدی از امام رضا علیه السلام نعمل ادام الخلو ولن یفتقر اهل بیت بیتند هم الخلو هرگز نادار نمیشه نه نا فقر مالی نه فقر بهداشت فردی یا اجتماعی خانواده ای که پیششون سرکه طبیعی هست و سرکه طبیعی هم در ثبت قضایی خانوار هست ولی این مصرف صحیحه یه بار مصرف علکیه، ناهمگونه و یا مصرف بیربیه است مثلا هر روز برمیداره نصف استکان یه استکان سرکه سیب میخوره هرچه که ما میخوام چاق و چون بگیم و لاغر کن من دیدم بعضی این جفنگیات میکن اینجا مؤمن سرسوزه معده میگیره یبوسط شدید میگیره ریفلاکس هم میگیره نعمو جون به این آیات قرآن که عام اطلاقی مؤمن ها کلو و وابو ولا تصرف زیاد رویه در مصرف مصرف بی رویه نباشه ضرر داره نفعی نداره ضرر داره پس اگر کسی میخواد سرکه بخوره خوب از هر هیچ نرماله همه میخواد مشکلات گوارشی براش پیش نیاد درست شد اول و آخر قضا نکه قاشق چای خوری تو کل 24 ساعت میشه چار گرم یعنی یک قاشق چای خوری یه سرخالی کموش ها چه خواهم سفرام شده التعابات سفرا دارم درستش شد سنگ سفرا دارم اگر کسی دوست داره سنگ سفراش مومن را نرم بشه و دف بشه اینجا خدمتون چی گفتم امو جون گفتم سکنجبین محلول سکنجبین بخوره هر روز توی آب بزنه یه لیوان بخوره یعنی یکی دو قاشق پلو خوری. سکنجبین طبیعی بریزه توی لیوان روش آب بریزه هم بزنه بخوره اینجا سنگای سنجای سفرات حالت مانند میشه حالا بخوایی رقیق ترش کنی خب تامیندی که تامیندی یا قاشق میزی میذیم یا پنجشش خوشه هفت خوشه که باریک کس ماونا تو تین لیوان آب در حسایش در میاری ماونا با همون لپاش بخور سفرات رقیق میشه پمپاژ سفره به سراغ واحد میشه به دوازده واحد میشه دیگه ازولی کیسه سفره فشار اضافی روش نمیاد که خسته بشه. به همچین سنگای صفرات بزرگ بشه درست مومن اینجا مومن وقتی که تمهندی هندی نمک اینجا وقتی که تمهندی بی نمک پنشیش خوش ریختی تو لیوان آب همزلی حساس جدا شد مومن بعد خوردی خوردی صفرات رقیق میکنه کمک میکنه به دفع صفرات اضافی از مجرای اصناعشه به ابتدای روده کوچک از مجرای صفرا به اسم اشر که دوازده است که ابتدای روده کوچکه که بعد از خروجی از معدس که دریچه پیلاره درستشون معام ها خب. حالا یه بار دیگه میخوام سنگای های هم خرد بشه. اون دارم سه تا دارو میگم چون مد شده معام ها تندتون صف عمل میکن کسی صففره رو در میاره این یه اشتباهی که تو پزشکی جدیده من مریض دوچار دردهای شیکمی و پایین تنه زیاد میشه گای مبتلا به چندین عمل جراحی میشه من بارها در این چند سال اخیر ناموسای مردم با شوهرشون این مریبت به این مراجعه کنم یا باشه این ستا اگر تو جیره قضاییش باشه یکی چی بود؟ محلول سکنجبین طبیع یکی دیگه چی بود مومن ها؟ محلول تمرهندی بی نمک یکی دیگه چیه؟ جوشونده هسته خرما همه جا خورما هست همه هم خورما میخواد حالا تو خانواده که خورما هسته سال جمع نگهداری بهداشتی کن حالا هفته ای دو سه بار به با عنوان چای اصرانه 15 تا 20 تا از یه هسته ها بریستی این قوری کچیکا بذار 20 دقیقه با این آب جوشی که روش ریختی بذار 20 دقیقه بجوشه. به اندازه دسته استکان آب ریخته باشی بذار 20 دقیقه به جوشه یه استکان از اینه بخور بقیهش بریز دور باز دوباره تازه جوش دفعه دیگه سنگای کلیه سفرا مسانه خور میشه مومن ها تبول مساکین هم بلد باشی چونها آسونه؟ نه استرس میاره برای بیمار نه هزینه اضافی میاره نه وقت اضافی خرش کنه که میخواهد ای سفراش رقیق کنه یا میخواهد سنگ سفراش خورد کنه هنم یادگاری اگر کسی بخواد شن کن شن کلیه و لوچه سفرابی که لجن سفرابیه هم و همچنین بعضی از سردل ها و تخمه ها مال نده و بعضی از اقسام خاص دودالبطن حیوانات موزی مرموز انگلیه در مهده و روده. و همچنین مومن ها تسلوا سختی رگا و همچنین نرمی استخان راشیتیست و پوکی استخان بیماری استئوپروز نگیره یا کمک به درمان همه اینا کنه سرکه طبیعی تو جیره غذایی بذار حالا فرض کن همه اینا رو داره به اضافه چی اموجون مربوط به التهابات شدید ناشی از صفرا المرار المروه که گاهی به سر شخص میزنه و حالتهای شبه جنون و شبه سفاحت پیش می‌آورد حالا اینجا تو 24 ساعت سه دو قاشق پلوخوری سکه طبیعی و وسط روز یه لیوان آب که یه قاشق پلوخوری سرکه طبیعی انگور عسکریه عصرانه یه لیوان آب که یه قاشق پلوخوری درش سرکه طبیعی سیب درختیه درشه مومنان همونایی که گفتم روگرام میشه کمک به درمانم میکنه خواستم این لنیف تقیره بگم چقدر مطلب مهم میاد با نفی مطلق امام رضا فرمود. امام رضا علیه السلام فرمودند نعم ادام الخلو و یفتقر اهلو بیتن این الخلو آخرین روایت امام رضا علیه السلام فرمودن خلل خل الخمر مما فسد چیزایی که فاسده و فسادش میخوای خارج کنی از سرکی طبیعی استفاده کن کاری فساد از درونه بدنه و سعفونت های داخلی فساد در فضای دهانه مثل محلول آب سرکه اینا که حسرتون توضیح دادم پس با سرکه طبیعی فساد رو از بین ببر اما بعضی چیکار چکار میکنن؟ بعضی ها میان این سرکه طبیعی رو یا اصل طبیعی رو فاسد میکنند حتما تصور شد بعضی ها میان سرکه طبیعی رو یا عسل طبیعی رو فاسد میکنند بعد میان دفعه افسد به فاسد میکنن. هم گرفتین چی شد؟ نظر داخل و خارج کشور مثلا میاد عسل رو مخلوط با سرکه سیب میکنه بعد میگه این رو خوب میکنه. عسل با نمک با گرد و خاک با سرکه فاسد میشه حالا اینی که فاسد کرده میاد باش دفع افسد میکنه این کار اتاریه و بعضی از این دکترای جدید داخل رو کشور لذا بعضی از این کتاب هم مثل کتاب معجزه سرکه سیب نویسنده مارگوت هلمیس مترجم نیکی خوگر مثلا در صفحه هفتادگی که این کتاب همین جور میاد میکنه سرکی سیبی که مخلوط با اصله اسمش گذاشته اکسیر سلامتی. گرفت مونه اگر بخوام نظیر بیارم تو شیمیایی مثل کسی که قفونت داخلی داره شما با کپککن خوب کنید. حالا اسمش میذاری آمتی بیوتیک ها. با انتیبیوتیکا خودشون فاسد هم. اما با این فاسد دفعه افزد میکنه که آفونت داخلیه ولی چقدر ضرر داره برای کلیهات و برای کبد؟ هیچ متخصص داروشناسی هیچ متخصص گوارش، هیچ متخصص کبد نیست که بگم این چرک خوشکناه شیمیایی ضرر برای کلیه و کبد نداره من که تا حالا نیدم نه داخل نخواد کشور. حالی خواستم اشتباه متداوله بگم. وقتی چیز خوبه چرا فاسدش کنی یا با فاسد دفعه افسد کنی؟ آقا عفونت داخلی داری؟ چرا که داخلی داری؟ سیب یا آب سیب رسیده ی طبیعی عسل طبیعی یا عسل رقیق شده ی طبیعی با آب یا آبجوش جوش شیر تازه گاب کمچن شلقم یا آب شلقم تمام شده این ستایی که گفتم؟ صد اکثریت قریب به اتفاق افونت ها و چرک های داخلی بدن حب چرا بلافاصله فاصله برایم میداریم میداریم اموکس سیلین کلاو سیفالکسین حب بابا جم این ستا خوباره بمیشتیم تو نبقید قصده جیب مردم بخورید بخوری یه باره یه بنده خدایی بحث میکن برگفت مردم که بعضیشون پول ندارم گفتم عزیز من تو باید درست حرف بزنی تو چیکار به جیب مردم داری میگرد دکتر اقتصادی تو که طبیب هستی باید درست حرف بزنی وقتی با چیز خوشمزه غیر فاصل میشه دفع افونت کرد و چرک داخلی چرا فاصل دستش میدی که عوارض سوء دارد حرف خوب تصاحبه شد همونجا؟ خب حالا اینم لذا من اینجا به کتاب این بندگان خدا چه خارجی چه داخلی حاشیه زنم نمیشتم از نظر روایات شیه اصل رو سرکه خاک و نمک خراب و فاسد می کنم از نظر شرعی و دینی مخلوط اصل و سرکه مرجوح و مکروه است رجحانم عقلی نداره خب آبکی علمیه پوسپیازی علمیه علم و یقین نیست لعاب علمیه نمیدونم تصاقه حرف چی میگه این این مرسل حالا مؤمن سرکه سیب به صورت طبیعی با دوزه خاص وجدانن فوائد متعددی دارم و ستون هم از کتاب میگم طاب كتاب الخارجي اللهم صل على محمد وآله